الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم بعد المبحث الثاني العوارض خوب در درس مبحث قبلی خوندیم خودی انواع اهلیت واجب و ادا بعدش هر کی ناقص و کامل داشت مبحث دوم این فصل در رابطه با عوارض اهلیت هست چی یه سری اوارضی میان دو این احلیتا رو چیکار میکنن بله شماره 50 علی بنا مما تقدم ان اهلیت الوجوب تثبت للانسان ناقصه في دور الجنين ثم تصير كامله بعد ولادته و تبقى ملازمه له ما دامته الحياه فيه دیگه از درس‌های قبلی دانستیم که اهلیت وجوب ثابت میشه به شکل ناقص برای انسان در دوره جنینی سپس بعد از ولادتش کامل میگردد و همیشه همراهش هست تا زمانی که زنده است خب اما اهلیت ال اداه لا تثبت للانسان في دور الجنين ولا تثبت للصغير غیر المميز ثم تثبت ناقصه للصغير المميز ثم تکمل له اذا ما كمل عقله خب این هم ادامه همون چیز است میگی از قبل از بحث های قبلی دانستیم که اهلیت ادا در دوره جنینی برای انسان ثابت نمیشه در دوره بچگی که هنوز به سن تمیز نرسیده ثابت نمیشه سپس در دوره تمیز به شکل ناقص ثابت میشه و زمانی که عقلش اومد و بالغ شد کامل میشه اهلیت ادا توی دیگیری که نداره بعد از ولادت تا تمیز هم نداره در دوره تمیز تا بلوغ ناقصه از بلوغ به بعد کامل تمیز چه زمانی که تشخیص میده نداره. مرحل اول کلن نداره نه نه دو مرحل اول اهلیت ادا نداره ناقص میشه چارمش کامل میشه زمانی که طرف تشخیص میده میتونه مثلا بفهمه وزوجية نمازية إن تية وأن تية. خب بس هنا بيجي قبل خلني. ولكن قد يعرض للإنسان بعد كمال أهليته من الأمور ما يزيلها أو ينقصها. ينقصها أو لا يؤثر فيها بالإزالة والنقصان. ولكن يغير بعض الأحكام. به لمن اردت له و هادهی هیلتی تسمه بالعوارض الاهلیه بگه اما گاهی موقع برای انسان آرز میشه بعد از کامل بودن اهلیتش اموری که این اهلیتو یا کامل از بین میبرند یا ناقصش میکنه. بله زائل کردند عبور پیش میاد که یا این اهلیت ها رو کامل از بین میبرند نا. یا ناقصش میکنند یا این که نه نه نا که ناقصش میکنند و نه که از بینش میبرند تاها بعضی از احکامات رو نسبت به یه شخصی تغییر میدند و این عبور عوارز اهلیت نامیده بشند به اینا چی میگن؟ عوارز، عارزه خب پس این تمهید و گفت در رابطه با عوارز خلال أنواع العوارض شماري بنجا. يك تنقسم العوارض إلى قسمين. مين فرماد عوارض هاي كبر الإنسان فيش ميانت ودر أهلية تأثير مجزارات دون يك الأول عوارضه سماوية وهي التي تثبت من قبل صاحب الشعر بدون اختيار الإنسان. ولهذا نصب إلى السماء لأن ما لا اختيار الإنسان فيه ينسب إلى السماء مثل الجنون والول والمرض والموت. بگه نوع اول عوارز عوارز سماوی هستند آسمانی عوارز آسمانی اون عوارزی هستند که از طرف صاحب شرع هستند انسان در اونا اختیاری نداره به این خاطر به اینا بیگند نسبتشون به آسمان بیدند زیرا انسان درشون اختیاری بل. مانند دیوانگی دیوانگی دست انسان نیست مریضی دهست انسان بوت این اوارز که پیش بیان در اهلیات تاثیر میگذارند، ولی اینا از چه هستن نوی سماو بی که انسان در اینا اختیاری ندارد و الثانی اوارز مکتسبتون و هی ما كان لیلانسانی فیها کسبون و اختیارون و والسکری والاکراهی نوی دوبوم اوارز اوارز مکتسبه هستند، کسمی ها اولا که انسان در اونها کسب و اختیار داره مانند جهالت آقا جهالت یک چیزی که خودش نمیدید بله سکر مستی رفت آقای چیزی رو خورده و الان مست شده یا اکراه. این اکراح سماوی نیست اجبار آقا شما رو یکی میاد اجبار بیکنه که یالا کفر کن طلاق بده فلان کن وَسَنَ تَكَلَّمُ عَنْ بَعْضِ الْعَوَارِزِ سَمَاوِيَّتِ وَالْمُقْتَسَبَتِ بیگه ما در رابطه با بعضی از عوارز آسمانی و عوارز مُقْتَسَبِ سخن خواهیم گفت ولی ابتدا در مورد کدوم عوارز سخن بگویم؟ المطلب اول العوارز سماویه مطلب اول عوارز آسمانی سماوی اینو انشاءالله میخونیم جلسه بعدی عوارز مُقْتَسَبِ رو تا اینجا یعنی چیز خاصی فقط تقسیم بندی های ساده ای بود حالا خود اوارزه رو هنوز شروع پس ابتدا ما اوارزه چطور شروع میکنیم اولا الجلود اورزه اولی که آورده چیه دیوانگی آقا پنجادو دو عرفه بعض الاصولیین میگه دیوانگی رو بعضی از اصولیون چوری تعریف کردن بیان نو اختلال العقل به حیث جریان جريان الافعال والاقوال الا نهج العقل الا نادر اصولیون جنون چوری تعریف کردند گفتند اختلال در چی عقله به گونه ای که اون جریان افعال و, و اقوال به شکل عقلی نیست مگر خیلی نادر آقا کارش کارهای عقلانی نیست حالا ممکن است یک دیوانه یه کار عقلانی عجب بده الا نادران گفتا نادر ممکنه که یک کار خوبی کار عقلانی ولی کارهاش بر منهج و روش عقل نیست, نیست. و هو نا آن خود دیوانگی بر دو نوعه اصلی و تاریون یک دیوانگی اصلی همیشه دیوانه بدبخل یک تاری پیش آمدی و کل من اما مبتدون او غیر مبتد و هر کسی دیوانگی ها اصلی و تاری یا طولانی یا ممتد نیست بالا و الجنور به نوعه لا يؤثره في اهلیت الوجوب دیوانه گی با هر دنوش چه اصلی چه طارق در اهلیت الوجوب که تأثیری نمیگذاره طرف تو شکم مادر جنین اهلیت الوجوب رو داره حقوقی براش بیاد دیگه نه دیوانه هیچی نداره نه مگه تأثیر در اهلیت الوجوب نداره یعنی اهلیت الوجوب نفی نمی کنه یعنی نمیبره؟ بابو دقت کن والجرور بنائ اله لا يؤثروا في اهلیت دیوانگی با هر دو نوعش در اهلیت وجوب تاثیر نداره یعنی طرف اون اهلیت وجوبشو داره بگذار که دیوانه یعنی آقا ارث براش ثابته اهلیت وجوب براش ثابته اهلیت ادا و لینا مگر بتونه بیاد این آقا نماز میکنه یا کاره دیگه پس جنون با هر دو نوعش در اهلیت وجوب تاثیر ندارد الا انهو یعثرو فی اهلیت الادا فی اعدمها بیگه ولی در اهلیت ادا تأثیر داره رو کامل از بین میبره، کسی که دیوانه است اهلیت الادا شما دیدید که مثلا به دیوانه ها به آقا بیا از نماز بخوند اخی این آقا اهلیت ادا نداره لعنها تثبتو بالعقل و تمیز بگه زیرا اهلیت ادا با عقل و تمیز ثابت میشه و دیوان تو چیزی داره و فاسد العقل و عدیم و تمیزی ولی ها دکان حکم و حکم صغیر غیر ممیز فی تصروحاتی و افعاله بگه دیوان فاسد العقل هست تمیز نداره به این خاطر حکم بچه غیر ممیز رو داره حکم بچه چی رو داره؟ أما في العبادات أما دارتها فإن كان الجنون ممتدا فإنه يسقط العبادات أما إذا كان الجنون غير الممتد فإن الأداء وإن كان غير ممكن في حال الجنون إلا أنه يمكن بعد الإفاقة على سبيل القضاء بدون حرج، فكان الأداء ثابتا تقديرا فيبقى الوجود نقدر اشتبع شيء در مورد عبادات بيجي بیگه اما در مسئله عبادت جنون به چه شکلی میگه اگر جنون ممتد بود ها؟ بله مثلا پنج سال آقا دیگاه در این حالت عبادت ساقط میشند عبادت ازش چه میشند شا. اما زمانی که جنونش غیر ممتد بود جنونش چی بود غیر ممتد بود در این حالت اگرچه که در حاله حالتی که حالت دیوانه نمیتونه ادا بکنه ولی بعد از که به حوش آمد باید اینا رو قضایی بیاره من قضایی بیاریم؟ هر دیگه شخصی مثلا وقت نماز ظهر دیوانه بوده آقا مغرب به حوش اومد نباید نماز ظهر و عصر رو بخونه؟ آه؟ چون اهلیت عدایش تقدیراً ثابته بیاره خودش بیاره خودش سوم از اوارث از اوارث بی خودش بیاره ثانیا بعدی چی هست اته هست اختلال در الان دیگه تعریفش میکنه یا جعلو صاحبه قلیل فهمی مقتلیتو الكلامی فاسط تدبیری و هوا نوعان ردعته بقول ماشموه بلوچا یعنی پوک دیوانه نیسا مثل جنوکها ولی انسان بیچره سبقی یعنی دقشه اقلش خیلی کمه عقلش چی؟ خیلی کمه یعنی او جد تو این معامله وارد بشه کشت بکنه ار کاری ببکنه به قول ماسا جهلاد و بالا خودشو تشخیص میده بالا و قایدی تشخیص میده ولی آه, آه ده ده عقل ندارد. الان تعریفش میکنیم دیگه اختلالون فی الاقل یجلو صاحبه قلیل فهم، مختلف تون کلابی تدویری یک اختلالی در عقل هست که صاحب همچنین اختلالی فهمش خیلی کمه مختلط کلامه سخنانش دقیق نیست تدبیر خوبی نداره ها شده دیدی دفرد رو مثلا میاد اینجا بیگردن می میگردن شبم خونه میرن خودشون رو به آب و آتش نمیاندازن ولی کار هم بلد عقلش هم برابر و هو نوعا میگه اته بگه دیپ فلانی انسان معطوه‌یه، از حرفاش که زنا، عته اول و عته اتح بر دلوعه، عته نلا ادراک و لا تنیز و صاحبه یکون فل کل مجنون، یک عته داریم که اصلا ترف درک نداره، تمیز و تشخیص نداره، این دیگه به بسیمود دیوانه از اسحاقاندش، درجه این بالا تریه. أقول أنه يجب أن يكون هناك خدمة ويجب أن تكون هناك بالتعامل ويجب أن الثاني أته يبقى معه إدراك وتمييز وليس كإدراك الوقلاوة وفي هذا النوع من الأته يكون الإنسان البالغ كالصبيل المميز في الأحكام وعلى هذا لا تجب عليه العبادات ولكن يصح منه أداؤها ولا تثبت في حقه العقوبات ولا تجب عليه حقوق العباد التي يكون المقصود منها المال ويصح أداءها من قبل الولي كذمان المطلفات وتكون تصرفاته صحيحة نافذة إذا كانت نافئة له نافة محزن وباطلة إذا كانت مضرة له ضرر محزن وموقفة إلى إجازة للي إذا كانت دائرة بين الدافئ والضرر خبدي قداش تباشيد أتهدو إدوفو كالتراف کامل دیوانه نیست ها در تمیز داره ولی مثل انسان عاقل هم نیست میگه با این نوعی از اطح انسان به انسان بالغ مانند بچه ممیزه در احکامات بچه ممیز هفت سال داره هشت سال داره نه سال داره هنوز بالغ نشده ولی ممیزه دشت. مثل اینه چه احکاماتی داره این اطح از این نوع مثل ایره خب خودش میگه سنش بزرگتری از نوع دوم معتوه اون درجه یکش نه که دیگه کامل بدارد بدی میگه با این نو ازته انسان بالغ مانند بچه ممیز هست در احکامات خب خودش دوبار تکرار میکنه که تو طور بچه مگه چه حالتی داشت میگه بر این و علی ها بر این اساس واجب نیست بر هم چنین معتوه عبادت مثل ممیز عبادت بر واجب نبود ولی اگر انجام بیداد چی بود؟ صحیح, صحیح, صحیح بود میگه بر این اساس عبادت برش واجب نیست ولیکن ادا کردنش از همچنین شخصی صحیح هست و اقوبات در حقش ثابت نمیشه آقا این آقا اگر رومت جرمی کرده بود دیگه اقوبتش نمیداد و واجب میشه برش حقوق بندگار حقوق مالی حقوق چی؟ مثلا اونت زدی گرفت باید نفقه رو چی کار بکنه؟ باله. و عدای این ها هم از طرف ولی چه هست؟ صحیحه باره ماند زبار مطلفه اومده بود آقا یه چیزی رو خراب کرد پدرش زمانت میده تصرفاتش ببینید یه دقت دقیقت کنید قبلن یه سخن رو تکرار نکردید و اون داشته باشید هم برای بچه ممیز و هم برای معتوه نوع دوم چون این ها حکومش کیه. یکیه معتوه نوع اول مثل مجنون بود که مثل بچه غیر ممید بود مثل بچه چی بود؟ دیوانه مثل بچه غیر ممیده که دو سالشه دیوانه مثل اون بود معتوه نوع دوم مثل تمید. بچه یکی سن تمیز رسیده بعضی از احکامات شو گفت بعضی های دیگر رو الان میگه میگه اگر اومد تصرفی انجام داد مثل انجام داد. گفت بچه ممیزه اگر کاملا به نفش بود صحیحه کاملا به بود صحیح نیست اگر هم توش نف بود همچی اون موقع بستگی به اجازه ولی داره دبیدید این حکم ممیز و معتوه نوع دفعه در مورد تصرفات معاملاتش عقدش فلانش ها؟ عبادت نه عبادت نماز روزه و ایناش اگه خود ازش صحیح اما برش واجه هم نیست ولی تصرفاتش کارایی که بیره آقا تهمیش معاملی بیزنی اینو که تصرف این نوع کاراتش اگر به مطلق بود براش صحیح زرار مطلق بود صحیح نیست خلاص آقا طرف هم بگی بیالا گمشو وسائل رو که از این آقا خریدی یا بشدادی پسش گرد اگر نه بین بيه هر دوتا دور بیزد اون موقع بستگی به اجازه ولیش داره ببینید از اینجا بیگه بیگه و تکونو تصرفاتو صحیحتن نافذتن اذاکانت له لهو نفع محضن تصرفاتش صحیحه اجرامی شه زمانی که نفع محض بود و باطل هست زمانی که زرر محض بود و توقف بر اجازه ولی داره یا متوقف بر اجازه ولی هست زمانی که بین نفع و زرر بود پس دیوانه مثل غیر ممیز بود معتوه بردان رو بود نوع اول جز دیوانه ها بود نوع دومش جزوه بچه ممیز بود خالفا نسیان آرزه نسیان اگر برای اسمان نسیان پیش اومد آیه احلیت وجودش از بین میره آیه احلیت ادا احلیت وجود که اصلا در این چه حالتی از بین نمیره تا زمانی که زنده است این رو برای داشته باشید اما بحث روی احلیت ادایه بحث ر قد <تصفيق> كنت بقاء الدسيان يعرض للإنسان فلا يجعله يتذكر ما كلف به وهو لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء وهو لا يكون أذراً في حقوق العباد وعليه لو, لو أتلف إنسان المال غير ناسياً لوجب عليه الزمان أما في حقوق الله تعالى فالدسيان يعد أذراً بالنسبة لاستحقاق الإثم فالناس لا إثم عليه أما في الأحكام الدنيا فقد يكون النسيان عذرا معقولا فلا تفسدو أحكام الدين ف الناس لا إثم عليه أما في أحكام الدين بعله بعله فقط يكون الدسيان عذرا مقبولا فلا تقصد عبادته كما في اكل الصائم الناس بله خوب دقت داشته باشی در مورد فراموشی میگه فراموشی یک عارضی هست که برای انسان پیش میاد و کاری میکنه که انسان اون مسئولیتی که برگردانشه اون تکلیفی که بهش شده اونو فراموش میکنه خب میگه دسیان نه احلیت وجوبو نفی میکنه و نه احلیت ادا فرد تو اهلیتو سرجاش هست و در رابطه با حقوق بندگار هم عذر حساب نمیشه اگر اومد مال شخصی دیگری رو از روی فراموشی تلف کرد زامل دا روی فراموشی اومد رو مال شخصی دیگر رو چکار کرد زامله اما در مورد حقوق الله پس در مورد حقوق العباد گفت در مورد حقوق العباد نسیان عذر نیست. نیست اما میگه در مورد حقوق الله تعالی نسیان عذر شمارده میشه. البته در رابطه با چی؟ در رابطه با اینکه که آی گناهکار هست یا نه؟ گناهکار نیست طرف نبازو فراموش کرده گناهکار نیست پس بگه یعد عذرن به نسبتی لی استحقاق الاسم بگه عذر شمارده میشه نسیان با تواجب چی؟ یعنی که مستحق گناه میشه یا مم. نمیشه میگه که گناه احکا... چی ناسی فراموش... کسی که فراموش شده گناهی برش مم. نیست اما در رابطه با احکام دین اما در رابطه با احکام دین میگه که دسیار ازره هنگو تعالی همه دین نیم؟ بله ولی خب در دین حقوق مختلف همه؟ ولی دینی نیست؟ بدنی نیست به نظرتون؟ نیست بودی دوتر بودی دوتر بودی دوتر بودی دوتر نه می دونم اونو میگه اما در رابطه با احکامات بدنی نسیان عذر مقبول حساب میشه پس عبادت هاش فاسد نمیشه خب دیر که 100 درصد ولی بدنی و مالی داریم احکامات مالی داری و بدنی هستی. میگه اما در رابطه با احکامات بدنی عذر حساب میشه نیست یعنی اوزر مقبول. پس هاش باطل نمیشه. همانطور که در رابطه با همان طور که اگر اومد و روز دار روزش رو چکار کرد روی فراموشی، پس این یک عذر هست و أما في أحكام الدين فقد يكون النسيان عذراً مقبولاً فلا تفسد عبادته أما در مورد أحكامات الدين نسيان عذراً مقبولي هست عبادتهاش باطل نعمي شيء ما ننده يدك بياد روز روح روح فرامو شيء بخل رابعاً النوم والاغماء بخل نمية كافية ها؟ بخولیم یا تا عوارز مقتصبش ادامه بدیم یک برگه من تا اناو والاقماع آقا فراموشی و چی میگم خابیدن و خواب رفتن و میهوش شدن کسی خواب رفت یا میهوش شد بله نقاع النوم والإغماء ينافيان أهلية الأداء للوجوبة خاب فراموشي ينافيان أهلية الأداء للوجوبة أهلية أداره نافي ميكناً أما أهلية وجوبه نافي. فما دام الإنسان نائماً مغمى عليه فليست له أهلية الأداء لأنها تقوم على التمييز ولا تميز للإنسان في حالة نومه أغمائه بگی زمانی که انسان خواب باشه یا بیهوش باشه اهلیت ادا نداره زیر اهلیت ادا اساسش تمیزه کسی که خوابه یا بیهوشه تمیز نداره تمیز داره چی تشخیص میده به خواب یا مرده دیگه و على هذا لا يقصد بشیء من اقواله مطلقا ولا يؤخذ بافعاله مؤاخذه بدنیه ولكن يؤخذ مؤاخذه مالیه كما يجب عليه ضمان ما يتلفه من مال به میگه که بر این اساس هیچ چیزی از اقوالش مطلقاً اعتبار نداره. آقا تو خواب بود و طلاق داد. آها طلاقش قبوله نه؟ چون اهلیت ادا نداره. آره وجود داره. آره وجود داره. ها؟ خواب حرف بزنه تلاقی تو ندید مردم خواب ببینه؟ بله چقدر دیوانه این پسر تو این جز معتوهاست یاسر جستی هایی خودت راست و حسد... <تصفح> <تصفح> <درستي قدرستو> شبه <شبمو. تصفح> <تصفح> <تصفح> خب بریم جلوتر و علا هاده لای ارتدو بشین من اقوالی مطلقا بگه به این اساس اقوالش مطلقا اعتبار نداره و مؤاخذه نمیشه با افعالش مؤاخذه بدنی آقا هون تو خواب بود صد یکی رو لگتی و مرد اگه قصاصش میگرند؟ نه میگه مواخذ بدلی نمیشه شون احلیت ادا نداره ولیکن مواخذ و مواخذت مالی میشه آقا زد تو لزون مردم و داخل کرد تو خواب لگه چیزه نه؟ در این حالت باید تلف باقی همانطور که بیگه واجب است برش زمانت اون چیزی و اون مالی تلفش کرده است أما بالنسبة للعبادات، فسونا مالين بوداندو، عقول بوداندو، أفعال. أما بمن بالنسبة العبادات، أما بالنسبة للعبادات فإن الأداء في الحالة مرفون للنائم والمغمى عليه، لأن كل من النوم والإغماء يوجب تأخير الخطابة بالأداء إلى وقت الانتباه والإفاقة، لامتناع الفهم واستحالة الأداء في هاتين الحالتين. أما بالنسبة العبادات، یه ادا کردن در اون حالت از انسان خواب و از انسان بیهوش مرفوعه برداشته شده زیرا هر یکی از خواب و از بیهوشی ایجاب میکنه تاخیر تأخیر خطاب رو طرف و موقعی که خطاب اومده که که نماز بخون ولی اون آقا چیه؟ خطاب متوجهش نمیشه چون خوابه تا تأخیر میشه این خطاب تا چه زمان؟ تا زمان که بیدار باشه بیدار که شد؟ ورد دیگه بگید الان مخاطبه چور کسی که خوابه نمی‌شه و نمی‌تونه کار بکنه ادا بکنه پس در حالت خواب و در حالت بیهوشی فهمیدن و ادا کردن ممکن هست الا ان وجوب العباده لا يسقط لاحتمال اداء ال بالانتباه و بالاشتباه والافاقه او احتمالي حصول خلف الادای و هلقبا بعد الانتباه و نفاق میگه چرا؟ میگه البته موقعی ما میگیم که در اون حالت ازش برداشته میشه به این معنی نیست که کلن عبادت از گردنش چی میشه؟ ساقط میشه بلکه میگه عبادت وجوبش از گردنش ساقط نمیشه چون بیتونه بعدن بعد از اینکه بیدار شد یا بگوش اومد اون چکار بکنه؟ اداش بکنه یا بیتونه جانشینش رو بعدن ادا بکنه بعدن انجام بده که همون قضا هست که همون جرد بعد از اینکه بیدار شد یا بگوش آمد خواه مثل المرازو تنجوبین آرزه سماوی مریضیه المراد بالمرض هنا غير الجنود والإغما وهو لا ينافئ لأهليتين أهلية الوجوب وأهلية الأداء فللمريز أهلية كاملة بنوعها ولهذا تثبت الهقوب له وعليه إلا أن المرض يؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للمريض مع ثبوت الأهلية الكاملة له من ذلك عدم نفاذ بعض تصرفاته لقد أشتبه شيء مسألك خليز جالبي بيجي بيجي منزول المريض ديباني يوبيه شيلي ستلونا رجاء نشكار كارت بحس كارت بگه آقا مریضی هیچ کدام از اهلیتو از دو اهلیتو نعفیه؟ نه نیکنه نه, نه اهلیت وجوب را و نه اهلیت ادا را مریض اهلیت کامل داره هم در اهلیت وجوب و هم در اهلیت ادا و به این خاطر ثابت میشه حقوق برای مریض و بر علیه مریض آقا واجباتو باید انجام بده یا اون حقوقی که داره بشتلق میگیره جز آن که مریضی در بعضی از احکامات برای شخص مریض تاثیر میگذاره با وجود ثابت بودن احلیت کامل براش بگه آقا با وجود این که احلیت کامل احلیت ادا و وجود براش کامل هستن ولی در بعضی از احکامات مریض چه میگذاره؟ مریضی تاثیر میگذاره از جمله بعضی از تصرفاتش اجرا نمیشه. مثلا آقا در مرز موته در مرز چیه؟ موت بیاد زنش طلاق میده. اینجا زن در این حالت ازش چی ارث میبره. در زن در این حالت ازشی چی میبره در حالی که در سالم بی بود زن رو طلاق میداد ارث نمیبرد چرا اونجا میبره میگم به خاطر که اومده طلاقش داده نکنه که به خاطر فرار عصی بوده از ارث بوده آه؟ پس در پس آقا پس خلاصه و مختصر سخن اینه که مریضی هیچ کدام از اهلیت رو نه, نه. نه کامل از برد میبرن نه ناقصش میکنه فقط در بعضی از تصرفات شخص مریض تاثیر داره بس هر تصرفات شخصی تصرفات بل کاری که انجام میده منظور تصرفات نه اینکه بخون مشخ نوشته معاملاتش با کاری که انجام میده متوجه شدی طلاق یک تصرفه سادسا الموت آخرين آرزي سماوي موت شو مين آرزي كتابة وردي فانجوهفت الموت آخر الأوارز السماوية وبه يكون الإنسان عاجزا عجزا طاما يترتب عليه إن عدام أهلية الأداء فتسقط أنه جميع التكلفات الشرعية لأن الأداء بالقدرة ولا قدرة مع الموت أما أهلية الوجوب فقد قلنا إنها تكون بالذمة ولا خلاف بين الفقهاء، ولا خلاف بين الفقهاء في أن الذمّة تفني بعد الموت، ولكن في فنائها بعد الموت مباشرة أقوالا للفقهاءين. لقد أشتهى شهد آخرين أرزي السماء وتوزي في بحث موبشي. من موت الموت آخرين أرزي السماء است كإنسان موت كاملا عجز بشيء، وأهلية أداهم أزبر. بیره. در نتیجه تمام تکلیفات شرعی از گردنش چی بیشن؟ ساقط بیشن زیرا عدا با قدرت هست و کسی که هم ببیره هیچ قدرتی نداره آه؟ عدا کردن با چیه؟ و توانایی آقا توانایی عقلی و؟ علا آقا توانایی داره؟ اما بکرم ابا احلیت وجوب ما قبلا دیگه گفتیم که با هست و هیچ خلافی بین فقه ها نیست که ذمه آدمی بعد از مرگ از بین بیره اما اینی که مباشرتا مستقیبا بعد از مرگ از بین بیره یا نه بعد از گرفتن حقوق این فقه ها در رابطه با این اقوالی دارد که خب خیلن برای خودمون داری صد مهم نیستن موفق بایید بایید. تو آلان کجا آره بابا؟